موسیقی یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار و خوش چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی این طور حکایت روایت کردن که در زمانهای دور دو دختر نوجوان با مادر مهربونشون در کلبه کوچیکی نزدیک یک جنگل زندگی می کردن. پدرشون سالها پیش مرده بود و مادر مهربون با هر زحمتی بود، اونها رو بزرگ کرده بود و ما عزیزان رفتار این دو خواهر از زمین تا آسمون با هم فرق داشت خواهر بزرگتر درست مثل مادرش خیلی کار میکرد و زحمت میکشید دختر نوجوان داشت بیشتر کارهای خونه رو به عهده بگیره تا مادرش کمتر کار کنه و فشار کمتری بهش بیاد برای همین صبح خیلی زود بلند می شد لباسهاش رو می پوشید دست و صورتش رو میشست و فورا سرگرم کار می شود. اول تنه رو روشن می کرد آر رو برای نون خمیر می کرد و اون رو خوب ورز میداد. بعد نون خوشمزه می میپخت. کلبه کوچیکشون رو تر و تمیز می کرد به مرغ و خروسا آب و دونه می داد اون وقت سطف رو بر می داشت و راه زیادی میرفت تا از چاه آب بکشه و به خونه بیاره اما بشنوید از خواهر کوچکتر دخترک خیلی دیر از خواب بیدار میشد تازه وقتی هم که از خواب بلند میشد مدتی توی تخت خواب میموند و غلط میزد و خمیازه میکشید وقتی که حوصلش از این کار سر میرفت با تنبلی از جا بلند میشد و با صدای خواب آلوده به مادرش نق میزد که مادر لباسام کو جورابم رو کجا گذاشتی یا جورابم رو پام کن بعد که مادر بیچاره لباسهای او رو تنش میکرد دوباره گرگر میکرد و میگفت گرسنم مادر برام نون و کره و اصل بیار زود باش مادر خیلی گرسنم پس شیر کجاست من شیرم میخوام بیچاره مادر از این حالت دخترش خیلی غصه میخواد. او بارها با دخترش صحبت کرده بود اما دخترک تنبل اصلا تن به کار نمیداد. باری، دختر تنبل وقتی صبحونهش رو میخورد، بدون اینکه سفره رو جمع کنه میرفتم در کلبه و روی تخت سنگ مینشست. دقایق این طرف و اون طرف رو نگاه می کرد، بعد کمی چرت میزد زد و بازم وقتی خسته میشد نق می زد. مادر، بیا اینجا، حوصلم سر رفته. خلاصه اون دختر لوس و نونور کارش فقط تنبلی و بهونه گرفتن بود و مرتب از مادرش چیزهای مختلف میخواست. اما خواهر بزرگتر هیچ وقت بیهوسله نمیشد چون همیشه کاری برای انجام دادن داشت. بهونه هم نمیگرفت چون در طول روز خودش رو با دوخت و دوز و بافتن جوراب و چیزهای دیگه سرگرم میکرد. آشپزی و خونه داری رو هم خیلی دوست می‌داشت. بنابراین دیگه وقتی برای بیکاری و بهونه گرفتن نمیموند. با وجود اینها چون دختر مهربون و زحمت کشی بود، باز هم به مادرش در کارهای مزرعه کمک می‌کرد تا زندگیشون بگذره. بله، این داستان همچنان ادامه داشت تا اینکه فصل بهار رسید. همه جا غرق در شکوفه شد و پرنده آوازهای قشنگشون رو میخوندن و اما در یکی از روزها که دختر بزرگ برای آوردن آب به سر چاه رفته بود یک دفعه سطل از دستش رها شد و به داخل چاه افتاد دختره که خیلی ناراحت شد نمیدونست چی کار کنه بایستی هر طور شده بود سطر رو از شاخ در می آورد چون اونها همون یک سطل رو داشتن و مادرش حتما ناراحت میشد. با خودش گفت حالا چه کار کنم؟ اگه مادر بفهم ناراحت میشه، پس بهتره هر طور شده برم توی چاه و سطل و در بیارم این بود که یک سر تناب رو به درختی بست و دنبالی تناب رو گرفت و یواش یواش و با هر زحمتی که بود از شاه پایین رفت و به ته اون رسید اولش چشمش هیچ جارو نمیدید چون ته چاه خیلی تاریک بود اما بعد از چند دقیقه که چشمش به تاریک عادت کرد چیز عجیبی دید بله اونجا یعنی ته چاه نه از آب خبری بود و نه از سطل دخترک خیلی تعجب کرد نگاهی به دروبرش انداخت و با خودش گفت اینجا به همه چیز شبیه جز ته چاه اما اب نداره بالاخره می گردم و سطل رو پیدا می کنم چون هرچی باشه سطل که از ته این چاه بیرون نرفته این بود که راه افتاد تا بره و سطلش رو پیدا کنم باری دختر همینطور که میرفت چشمش به یک تنور افتاد که چندتا نون توی اون میپخت نگاهی به نون و تنور کرد. خاص راه بیفته که صدایی به گوشش رسید. دختر جون این نونا دیگه پخته، بیا اونا رو بردار وگرنه گرنه می سوزن. دختر خیلی تعجب کرد اول کمی ترسی، ولی بعد، به آرومی به تنور نزدیک شد و نونها رو از اون درآورد آورد که یک دفعه راهی جلوش باز شد دیگه از تنور خبری نبود دختر رفت و رفت تا به یک درخت سیب رسید که پر از سیبهای قرمز و آبدار بود طوری که شاخاش از سنگینی سیبها خم شده بود به به سیبهای درشت انداخت و تا خاص راه بیفته صدایی شنید دختر عزیزم بیا بیا چند تا از سیبا رو بچین و بار منو سبک کن که شاخه هم داره میشکنه دخترک با مهربونی به درخت سیب نگاه کرد نزدیک شد و چند سیب از شاخه ها چید سیب ها رو توی جیب پیش گذاشت و دوباره به راه افتاد رفت و رفت تا به کلبهی رسید که از یخ ساخته شده بود و اطرافش پر بود از برفای سفید و تمیز نزدیک کلبه شد نگاهی به اون انداخ که در همین انگام در باز شد و صدای از توی کلبه گفت دخترم بیا تو بیا عزیزم دختر به آرومی وارد کلبه شد با دقت به اطرافش نگاه کرد و دید پیرمردی روی سکوی از یخ نشسته موها و های پیرمرد مثل برف سفید بود و نگاه مهربونی داشت پیرمرد تا دختر رو دید گفت خوش اومدی دخترم ممکنه کمی نون و سیب به من بدی بخورم مدت هاست که چیزی نخوردم و خیلی گرسنه دخترک اطاعت کرد و اونها رو جلو پیرمرد گذاشت و با تعجب ایستاد و او رو نگاه کرد با خودش گفت این پیرمرد ته این چاه چه کار میکنه چرا تو خونه یخی نشسته در همین فکر بود که پیرمرد لقمه نونی خورد و بعد رو به دخترک کرد و گفت دخترم میدونم چرا به اینجا اومدی نگران نباش من سطل رو پیدا میکنم و اون رو به تو بر میگردونم اما پیش از اون باید به من قول بدی که سه روز اینجا بمونی و کارهای منو انجام بدی. منم در عوض پاداش خوبی به تو میدم. دختراک قبول کرد که سه روز اونجا بمونه و کارهای او رو انجام بده. برای همین زود مشغول شد. کلبه یخی رو مرتب کرد و اون رو به خوبی تزیین کرد. هر شب جای پیرمرد رو میداخت و روزها براش غذاهای خوشمزه تهیه می کرد. لباس های سفید پیرمرد رو میشست و بعضی از لباسهاش رو که سوراخ بودن وصله می زد. پیرمرد خیلی خوشحال بود چون همه چیز تمیز و مرتب شده بود. روز سوم که تموم شد، دخترک آماده شد تا به خونه برگرده. پیرمرد برفی سطل دخترک رو آورد و اون رو در برابرش روی زمین گذاشت. دخترک خوشحال شد وقتی می خواست سطل رو برداره و بره دید که سطل پر از سکه های نقره است خیلی خوشحال شد و از پیرمرد تشکر کرد خواست خداحافظی کنه که پیرمرد گفت صبر کن دختر خوبه این سنجاق الماس نشون رو هم از من به یادگار داشته باش دخترک سنجاق رو گرفت و اون رو به شالش زد و گفت ممنونم پدر بزرگ اما میتونم سالی بکنم شما چرا اینجا ته چاه زندگی میکنید؟ اگه همراه من به خونه ما بیاید مادرم حتما خوشحال میشه قول میدم از شما خوب مواظبت کنم شما پیرمرد مهربون و خوبی هستید پیرمرد لبخندی زد و گفت متشکرم دخترم تو دختر مهربون و زحمت کشی هستی اما من نمیتونم با تو بیام چون الان فصل بهاره بعدم تابستون و پاییز میاد من باید تا آخر فصل پاییز اینجا بمونم بعد از اون میتونم بیرون بیام بله اون وقت همراه برف و سرما به خونه و مزرعه شما و به سرزمین های دیگه میام به همه جا سر میزنم از پشت پنجره ها سرک میکشم تا ببینم تو کلبه ها و خونه ها آدم ها چجوری زندگی کنند؟ آیا خونه هاشون گرم و صفره هاشون پره؟ آیا با هم مهربون هستن و دلهاشون پر از امید هست یا نه؟ دخترک پرسید خب پدر بزرگ اگه این طوری که میگید نبود چی؟ اون وقت چه کار میکنید؟ پیرمرد با ناراحتی سرش رو تکون داد و گفت به نظر تو چه کار میتونم بکنم؟ اگه آدمها خودشون به هم دیگه نرسن و به هم مهربونی نکنن از دست من چه کاری جز قصه خوردن برمیاد؟ دخترک به فکر فرو رفته بود پیرمرد چند لحظه ساکت مون بعد با خوشحالی گفت اما دخترک عزیزم خیلی خوشحالم که تو مهربون و خوشقلبی امیدوارم که همیشه دلت پر از شادی، خونت گرم و سفرت پر باشه، من همیشه تو رو دعا میکنم، حالا زودتر برگرد، حتما مادرت نگرانه، برو و سلام منو هم بهش برسون، دخترا که اطاعت کرد، سطل پر از سکه های نقره رو برداشت، و با خوشحالی از پیرمرد خدا خداحافظی کرد و به طرف خونش راه افتاد و از همون راهی که اومده بود برگشت تا به ته چاه رسید. تناب رو گرفت و خیلی راحت از چاه بالا. دختر به طرف خونشون شون براه افتاد هوا خیلی خوب بود همه جا پر از گل و شکوفه بود وقتی به خونه رسید مادرش رو بغل کرد و بوسید و همه چیز رو براش تعریف کرد مادر از دیدن دخترش خیلی خوشحال شد وقتی سطل پر از سکه رو دید گفت دخترم این پاداش خوبی ها و مهربونی های تو بوده حالا از این به بعد میتونیم زندگی راحتی داشته باشیم و دوستان حالا بشنوید از دختر تنبل او وقتی ماجرا رو شنید با خودش گفت: «وا من چه چیزی از خواهرم کمتر دارم؟ منم میرم و یک سطل پر از سکه میارم این بود که به مادرش گفت مادرشون منم میرم پیش اون پیرمرد تا ازش پول بگیرم دخترک این رو گفت و راه افتاد و رهفت به مرتب مرتب مینشست و خستگی در میکرد تا به سر چاه رسید اونجا تناب رو گرفت و پایین رفت به ته چاه که رسید اول کمی نشست و بعد به راه افتاد چیزی نگذشت که به تنور رسید تنور گفت دختر جون این نونها پخته بیا اینا رو بردار وگرنه می سوزن دختر با بی اتنای نگاهی به نونها انداخت و گفت خب به به من چه مربوطه من فقط اومدم از پیرمرد پول بگیرم همین و بس این رو گفت و راه افتاد تا به درخت سیب رسید درخت گفت دخترم بیا چند تا سیب بچین شاخه خم شده و داره میشکنه دختر شناشو بالند دخت و با بیحوسلگی گفت و به من چه که سیب بچینم من که حوصله این کارا رو ندارم. فقط اومدم پول بگیرم و برم. این رو گفت و راه افتاد تا به کلبه یخی پیرمت رسید. در کلبه باز بود دخترک بدون اینکه در بزنه و یا اجازه بگیره وارد کلبه شد. پیرمردی رو دید که روی یک سکوی سک یخی نشسته بود. بدون اینکه سلام کنه به پیرمرد گفت، من اومدم مثل خواهرم از تو پول بگیرم و برم. پیرمرد نگاهی به دختر کرد، لبخندی زد و به آرومی گفت: اما خواهرت سه روز اینجا موند و برای من کار کرد. تو هم اگه پول میخوای باید سه روز اینجا کار کنی. دختر که از کار کردن بیزار بود به خاطر گرفتن پول با بی‌حوصلگی قبول کرد که سه روز اونجا بمونه اما هر کاری کرد نتونست خودش رو راضی کنه که برای پیرمرد کاری انجام بده تازه اصلا کاری هم بلد نبود این بود که فقط نشست و نق, نق کرد یا گرسنش بود یا چیزی میخواست یا در و دیوار رو تماشا میکرد حالا این پیرمرد بود که برای او غذا درست میکرد و رخت خوابش رو پهن میکرد دخترک وقتی دید که پیرمرد اون همه کار میکنه پیش خودش گفت به خواهرم چقدر نادون بود که اون همه برای این پیرمرد مردنی کار میکرد اون خودش همه کارهای منو هم انجام میده اخرسرم پولا رو ازش میگیرم و بر برمیگردم سرانجام سه روز هم تموم شد و هنگام رفتن رسید دخترک نزد پیرمرد رفت و طلبکارانه گفت خب پیرمرد سه روز تموم شد و من باید برگردم حالا پول منو بده تا برم زود باش که مادرم چشم به و منم از اینجا خسته شدم پیرمرد سری داد و گفت ببین دختر جون درسته که تو سه روز اینجا موندی اما کاری برای من نکردی که به جای اون بهت پول بدم دخترک با ناراحتی گفت هرچی باشه سه روز تنها نبودی پیرمرد با مهربونی گفت بله دخترم درسته سه روز تنها نبودم بنابراین برای این سه روزی که مهمون من بودی به تو پاداش میدم پیرمرد این رو گفت و بعد یک جام بلورین و یک گردن بند الماس به دخترک داد دختر اونها رو گرفت و بدون تشکر و خداحافظی به راه افتاد. وقتی به خونشون رسید با خوشحالی به طرف مادرش دوید و گفت: مادر، مادر، ببین چه چیزای با ارزشی گرفتم؟ تازه اصلاً مثل خواهرم کار نکردم و زحمت نکشیدم. به من میگن دختر زرنگ. "دخترک اینها رو" گفت و پا اومد جام بلورین و گردنمند الماس رو به مادرش نشون بده دید که اونها مثل دو تکه یخ دارن تو دستش آب میشن. دخترک هیچ کاری نمیتونست بکنه و همینطور ایستاده بود و آب شدن اونها رو نگاه می تا اینکه آخرین تکه های یخ هم آب شد و از دستش به زمین ریخت و اثری از اونها باقی نموند مادر نگاهی به دخترش کرد و پوسخندی زد و گفت به به عجب پاداشی البته تنبلی هیچ پاداشی هم جز این نداره